این اصحاب کهف به به اینها کی بودن اینها چرا اون چه انگیزی از شهرها دیگه به اصطلاح شدن یا جلاوطن شدن اصحاب کهف اصحاب کهف اون جوانهای بودند به خاطر پاس داشتنم توحید باری تعالی و شرک نکردن در مقابل بدترین پادشاه دقیانوس اون زمان که مرشق و بدپرستی بود قیام کرده دقیانوس پادشاه بود ظالم بدپرست اما اینها توحید و یگان پرستی خداوندی رو اونها, اونها همین چیز بوده گفته من در مقابل هیچ احدی سرخم نمی کنیم فقط ذاتی باری تعالی پادشا و نهار و فراغ این با هم دوست نبودن یه گروه خاصی نبودن همه ناغاهانی با هم جمع شدن چون هر همیشه بده یعنی هم اغیده با هم جمع میشه نگران پریشان شدن جلو پادشا اینها رو آوردن یه سخارانی با آب و تاب، با آب و تاب، توحید واری طالب بیان کردن پادشا رو داگه دادن پادشا گوه نه جوان نکشید، جوانی حال رو فرصت داد. بعد اینها دیگه از شهر رفتن بیرون و داخل غار رفتن چوپانی با اون هم را شد هم با اون ها رفتو بعد دیگه بیرون از شهر از شهر که بیرون رفتن حال این شهر کجا بود این شهر اصابه کجا بود در این مورد روایت های زیاد جامعه بعض میگن غرناطه بود بعضی میگن اردن بود بعضی میگن یمن بود بعض میگن که بود هر کسی اندلس بود اما جالب اینه که این غار در کل این شهرها گفتن نمودش بوده هم در یمن غار بوده داخل غار قبر بوده هم در اردن غاری بوده داخل غار قبر بوده بالای بالای همون به غار مسجد بوده هم در اندلس بوده هم در عمان بوده هر جا که علما گفته اینجا احتمال داره اونجا هم غار هست هم قبر هست هم مسجد هست بالایش این میرسونه که در هر عصری در هر زمانی یک جماعتی از مسلمانها از مومنین در مقابل جبارهای های روز زمین قیام کرده این میده هر در هر عصری در هر یک گروه مومن متعهد و ایماندار و متقی ایگان پرست خداوند متعال ظلم را زیر بار ظلم و قیام کرد و این داستان ها تکرار شده اما این قار کجا هست تحقیم اخیلی که علما کرده هست در شهر اردن هست در شهر اردن بود و این از خود مرکز شهر چندان فاصله نداشت نزدیک مرکز شهر بود از شهر رفتن ویرون دیگه خسته شدن گفت استراحت بکنی اما اونجا خوابشون بود خواب رفته خدا وانده مطال در گوشه اونها دیگه وقتی وقتی اینسا خامیره گوش نمیشنوه نه تعطیل آزاد تعطیل و شنبه روز از و 9 سال عجیب خداوند مت عجیب به میگه 300 و 9 سال این به این به نقطه اشاره کرد دو تاریخ در زمان در کل دنیا از از اونجا بوده یک ماه قمری حساب ماه شمسی حساب کرده خداوند متوگو 300 سال و 900 بوده یعنی اگر به ماه شمسی بگیر نه قرآن دروغ میگه سین ساد سال میشه. اول ماه قمری ساکونی 300 سال میشه تا اینکه به هر هر سالی سه سال تفاوت می هر صد سال 3 سال تفاوت میشه و 300 سال بودن 3 سال, سال تفاوت 309 سال میشه به هر صورت حساب کن قران اینجا معرفی میکنه 309 سال با ماه قمری خواب راستن بیدار شدن چند روز خواب رفتی گفتن الان نیم روز میشه بعد گفتن یک ساعتی میشه بعد گفتن دو روز میشه به مرضی که بیدار شده این حالا دیگه خداوان خواست که این, این چیزو به نمائش بگذاره تا اونهار دوباره بیاوره به طرف اسلام حالا اومدن اون پالچه دیگیانو چکار که اون زمان این بزبخ باید زلخی دید که اینها گم شدن گوه بگیری بیاری داخل شهر گشتن گشتن داخل شهر اثر از اینها نبود اثری ای نبود بعد این تختی نوشت اصامی از که برا فلانی فلانی فلانی فلانی, فلانی. بعد این تخت رو در خزانه خودش گذاشت اونجا گذاشت که این چند نفر جوان که به این نداها و با این عقیده ناگهان به سری چیز خیلی حیرت انگیزی گم شدند اینها در یک شهر بودن این افکار رو داشتن اما خیلی شگفت انگیز و خیلی حیرت انگیز اینها گم شدند این هر پادشاه نو داخل خزانه گذاشت این پادشاه دیگه رفت و مرد و پادشاه بعدی آمد سر تومان سلمان بود و رو گرفت بعد او روز داخل شهر آمد گفت درسته شدی گفت حالا تو تو بازار دیگه خرید بکون پول جمع کردن پول هارک بریم حالا معلوم میشه که بلده همین جماعت تبلیغی ها ماشاءالله این گروه اینا مجاهدن دا دارمو کارا اینجا میدن پول جمع میکنه قضا میخورن اون واسطه کردن میکارو کارو کردن پول جمع کردن و حالا برو قضا بری وها بخوریم. پس این جایزه الله تو قرآن بیان کرده رفت تو شهر شهر نزدیکو شهر رفت خیلی تغییرات هم ولی اینجا چه خبره بولا بیرون کرد گفتن حتما خزانه بیرون کرده زیر خاکی از کجا آوردی باباز زیر خاکی چیه چه خبر اینجا این غریب تازه پیش باشد پا گفت بیا بیا بیا که ما دنبالشو میگردی داخل خود بیست رخ خزانه ما جو آثار باستانی همین تخته هست اسمت یه اینها بیرون رفت اونجا حالا سری سری رفت اونجا غزه های نخوردن فورا خوابش رو دوباره خبر اصلی و خواهد کردند. و پادشاه او الله پادشای نهار رو دید و و داخلها اینا رفت خوابی دن خواب رفتن همونجا دفن شدن داخل همونگار و پادشاه و خاطر یادگار اینا بالاغار مسجدی درست کرد که اینجا بیایید اینجا خداوندی مطالب این درس میده بهتری یادگاری چه بود؟ شعار اسلامی اینها خاطر توحید رفتند بخاطر ایگان پرستی رفتند همون شعارون هارو خداوندی مطابق بل تا این هست بخاطر این مسجد این رفتن بیرون و خاطر این چیز این دارن بیرون میکنن پس بنابراین اینو بگیری این اونجا گذاشتن فکر کنی حالا یادگاری گرفتن به این صورت که بلا یاد بودی باشه از گذاشتگاه حالا سال تولد بگیری یا سال رهلت بگیری تاریخ وفات اینجوری نیست این ای بخاطر اون خود ندای توحید این بوده